افسونه افسانه به نام خدا. سلام ها اعتباری برای فرهنگ و تمدن ملت‌ها هستند. فرهنگ و تمدنی که ریشه در باورها و اعتقادات مردم هر سرزمین دارند. با مطالعه افسانه‌های هر قوم و هر ملت، میشه به فرهنگ‌های بومی و محلی و دینی اهالی اون سرزمین پی برد. سانه پرنیانی است بافته شده با تاری از عشق و پودی از زندگی در این برنامه میخوایم یکی از های کشور عزیزمون ایران و براتون روایت کنیم ای به نام نمکی که از کتاب های ایرانی نوشتهی محمد قاسمزاده اقتباس شده امیدواریم از شنیدن این افسانه لذت ببریم در زمانهای خیلی دور در کشور عزیزمون ایران پیرزنی با هفت دخترش زندگی میکرد همسر پیرمرد از دنیا رفته بود و پیرزن و دخترانش به سختی روزگار میگذرندند اسم کوچکترین دختر پیرزن نمکی بود که از همه زیباتر و جذابتر و البته تنبلتر بود بای خدا بگم چی کارتون کنه دخترا چرا این لباس ها رو نشستین زیبا چرا این همه لباس نشسته اینجا ساخه؟ امروز این نوبت نمکی بود که لباس ها رو اگه یه روز بگم نمکی مرده من قربونه میدم نمکی نمکی وای چه خبرته ننه تو نقدر داد میزنی هرچقدر که داد میزنم به خرجی تو نمیره که نمیره حالا مگه چی شده؟ چی شده؟ مگه قرار نبود این رخ چهر کار چهر بشوری؟ میشورم <تصفيق> تا شب میشورمیشو ای داد ای بیداد من چه کنم از دست تو نمکی یه کمی هم از خواهرای خودت یاد بگیر آخه چی رو کار کردن و خونه داری رو و کدبانوگری رو به خدا میمونی رو دستم پسر اسمایل گورکنم نمیاد بگیر بگیره خب نیاد وا یعنی چی نیاد میخوای تا که بشینی برای دل من ببینوا اگه شش تا خواهرم که یکی یکی کدبانو ترا زرنگ شوهر کردن ننه خیر ولی اگه شوهر کنن من دل نگرانشون نیستم ولی هر بدبختی که بیا تو رو به دو روز بعد برات میگردون همی خونه وای نه نه چقدر قر میزنی قرل میزنم اینا درد دله حالا هم با من یکی به دو نکو بر برو کار بشو یاله وای باشه بابا باشه ولی دوستان، نمکی قصه ما هم خوشگل بود هم تنبل و همینم مادر و خوهرانشو نگران کرده بود خونه پیرزن در داشت و هر شب قرار بود یکی از دخترا قبل از خواب درارو یکی یکی ببنده تا غریبه وارد خونه نشه تا اینکه یه شب نوبت به نمکی رسید از اونجا که نمکی سر به هوا بود، ششتا تا از درا رو بست و در آخری رو نبست. وقتی که رفت به خوابه یادش اومد که آخرین درو در نبسته. خواست برگرده که درو در ببنده، با خودش گفت مهم نیست. بعدم رفت خوابید. نیمه‌های شب، پیرزن با صدای خور و پوف های عجیبی از خواب بیدار شد. بسم الله این دیگه که اینجوری خورو پاف میکنه نکنه یکی از دختر مریض شده برم ببینم توی خونه چه خبر؟ صدا از اتاق دختر که نبود یعنی چی؟ ای صدای کیه؟ ن... نکنه در باز بوده یکی اومد تو خونه آه! وای، وای، چی کی هستی؟ این به اینجا چیکار میزنه؟ وای، به شما اوی به شما دریده به شما مهمان رسیده به شما جایی ندارد به شما خدا مرگت بده نمکی که یه در باز گذاشتی کیسه تو ببرن نمکی خونه تو بریزن نمکی به نمونی نمکی بختت بسوزه نمکی شیش درو بستی نمکی یه درو نبستی نمکی پاشو برو تو پنج دری در واکم برای دی چی میگی نه نه کاری که گفتم انجام بده. برو پنج دری رو باز کن دیبا اونجا بخوابه. آه باشه ننه. خدایا خدایا من از دست این دختری ای سر به هوا خلاص کن. نمیدونم چرا بزرگ نمیشه این دختره. هر روز یه دست گل به آب میده با این همه تنبلی. ننه. رفت که بخوابه های به شما خوب شما شد دریده به شما مهمان رسیده به شما سفره ندارد به شما نالی ندارد به شما کارت بخوره به اون شکمت گیستو تو ببرن نمکی به تق نمونی نمکی بختت بسوزه نمکی شش در رو بستی نمکی یک در رو نبستی نمکی نمکی تو صفر قدری نون و خورمه است ببر بده به دیو باشه ننه خدایا خدایا نکنه این دیوه به این بزرگی بخواد تو این خونه با ما زندگی کنه نکنه کنگر بخور و لنگر بندازه تو این خونه جواب حرف مردم و چی بدم خدا بگم چی کارت کنه دختری سر به هوا ننه شش خور ما دادم های به شما هو به شما چفشه دریگه به شما مهمان رسیده به شما رخت خواب نمی از تو ببرن نمکی به نمکی بختت به نمکی شیش در بستی نمکی یه در نبستی نمکی نمکی برو بر آقای دیو دست رخت خواب تمیز پنکم باشه ننه این نگاه کن سوفر با همین اونو و خوراش داد. وای ده. وای، من اصلاً چه طور باشی که من دیو سیر کنم. وای پولم کجاست؟ نونا کجاست؟ خدایا این دیگه چه مصیبتی افتاد؟ تو خدا ازت نگذره نمکی. نه نه. پاراشاق خوابم پام کردم خیلی خوب. مثل خوابش برد. سود باش بریم تو تره خدا. سلو نیست اینجا بمونیم بس سبسود از خوب بیدارش منون چه خوکمت سرمون بریسیم بریم اون شب دیو اخلاق بعد از کلی قرض دادن و دستور دادن خوابید فردا که اون روز وقتی بیدار شد باز هم دستور داد براش آب و غذا بیارن پیرزن وقتی دید که دیو قصد بیرون رفتن از خونه رو نداره با احترام ازش خواست که اونا رو تنها بذاره اما دیو گفت به یه شرط حاضر که از اون خونه بره اونم اینه که نمکی رو با خودش ببره پیرزن و شش خواهر نمکی اول مخالفت کردند. اما وقتی دیدن که دیو عصبانی شده و ممکنه همهشونو بخوره راضی شدند و دیو نمکی و برداشت و از اون خونه رفت. اونا هفت شبانه روز رفتن و رفتن تا به یه جنگل بزرگ رسیدن <تصفيق> وای این جنگل چقدر بزرگ جناب دی تو عمرم همچین جنگلی ندیده بودم اینجا جنگل منه مال خود خود راست میگی معلومه که راست میگم اونجا رو ببین کجا رو میگی؟ ده ده ده ده. اون رو رو میگم خوب نگاه کن آه. چی میبینی خدای من چه قصر خوشگری نکنه این قصرم مال توه معلومه چه مال منه مال خود خود من م. میخوای داخل قصر رو آره آره پس باید تن تر بریم باشه آقا دیبه آه. آه. آه. میگم چقدر خوبی که آدم تو همچین. انگر بزرگ و قشنگ و با صفایی چون قصری داشته باشه با من ازدواج کنی این قصر هرچی تو قصر مانه تو میشه ازدواج کنم دخترای زیادی هستن که دلک رو میخواد با من ازدواج کنن و صاحب این همه ثروت بکن میترس. و ایچی نکل تو از من میترسی نه نه بایی با من از سگ میترسم اه, نه ترس اون سگ منه با تو کاری نداره نگخبانه این قصره اه, اون یه جوری به من نگاه میکنه تو بهش نگاه نکن آه. نگاه نکنه باشه بهتره بریم داخله آه. ببین این قصد چقدر قشنگی خدای من چقدر قشنگی اون جا رو ببین آه. اون خمره ها پر از طلا و نگرد یکی از این خونبه ها میتونه زندگیه مادر رو شیش تا خوهر تو از این رو به اون رو کنه آه. فقط کافیه با من ازدواج کنی و... صاحب این همه مال و سربت این قصد چند تا هفته اتاق, شد شد. هفت اتاق بریم همه رو بدنش بریم آه. ايه اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اتاق ثوام پر از فرشای قیمتی و ها... وای لا... یه ف... اینم اتاق چارام پر از شمشای شهر... طلا شم شهر... بیار بیار اینا، پر از خود جلا اینم پر از زیبا. برای بانوی این‌گرد یه لباس‌های چقدر اگه با من ازدباهش کنی همه یه این تو میشه نمک آقا دیبه چرا نمیریم اتاق هفتون به من نشون بدی؟ نه نه در اون اتاق هیچ وقت نباید باز بشه برای چی؟ برای این که من دوست ندارم آه. کلید اون اتاق هم میشه روی شاخه منه هیچ کس جز من جازل علاله وارده اون اتاق بشه اگه شد چی؟ بیه برو برگرد کشته میشه نکنه یه وقت به سرت بزنه که بری تو اون اتاق نه نه من معلومه که نمیرم مگه جونم سیر شدم خب، خب، دیگه من باید بخوابم بخوابیم و یعنی سر ظهر هل به زهر و شبکاری ندارم ما و هفت شبانه روز بیداریم هفت شبانه روزم میخوابیم باختش رو که من بخواهم روز هفتم بیدار میشم و لیناش نش, نش میکنی مراسم ازدواجمونو تو همین کلاس مارگو زدم میخ میخ خابید و نمکی که دلش نمیخواست روز هفتم با دیو ازدواج کنه تصمیم گرفت کلید اتاق هفتم و از روی شاخ دیو برداره و در اتاق باز کنه و ببینه اون تو چه خبره اون آهسته کلید رو برداشت و به طرف اتاق هفتم رفت در اتاق باز کرد و چشمش به تعداد زیادی دختر زیبا و ماه پیکر افتاد بگو! خوداگه شماها کی هستین؟ اینجا چی کار می‌کنین؟ دیو کجاست؟ تو کی هستی؟ برای چی اومد اینجا؟ چطور اومد اینجا ها؟ نکنه دیو میخواد ما رو بکشه؟ نکنه از تو خواسته ما رو یکی یکی ببری پیشش؟ تو رو خدا ما رو کمک کن. نظر اون دیو لعنتی ما رو بکشه. هارون باشین. من اسمم نمکیه. قهرمانی شما رو پیش دیو ببرم. ببینم تو اسمت چیه؟ اسم تلاس. من تلاست منم ستاره اینجا چیکار کار میکنی؟ دیوه لعنتی همه ایمارو اصفیر کرد و آورد اینجا آخه برای چی؟ برای اینکه حاضر نشدیم باشه ازدواج کنیم فقط همین؟ اه. نکنه تو قراره باش ازدواج کنی مگه من دیوونم با اون دیوه ازدواج کنم ستاره پس چجوری سر از اینجا در آوردی؟ حقایتش طولانیه دیوه الان کجاست؟ ؟ دیو؟ همین یه ساعت پیش خوابید. گوف هفت شب و هفت روز میخوابه و بعدش هم بیدار میشه تا مراسم ازدواجمون رو تو همین قصر برگزار کنیم حالا میخوای چیکار کنی؟ ما هفت شب و هفت روز وقت داریم که از این قصر رو جنگل بریم بیرون تا دست دیو بهمون نرسه. ولی جا که بریم اون ما رو پیدا میکنه. باید به جای فرار به فکر کشتن دیو باشی. ولی چه جوری؟ ما که این همه مدت اینجا زندونی بودیم. تو باید بگی چطور میتونیم از شهر دیو خلاص امروز که وارد قصر شدیم ام. یه سگ دیدم که جلوی در قصد بود خب اون سگ یه جوری به من نگاه میکرد. احساس کردم داره با هم حرف میزنه ها؟ فکر کنم اون بتونه به ما کمک کنه آره آره فورا بریم اونو با خودمون به قصد بیاریم آه. بریم بریم, بریم. نمکی همراه دخترها از قصر بیرون رفت اونا همونطور که بیرون می رفتن، مراقب بودند تا یه وقت دیو از خواب بیدار نشه دخترها وارد محبته قصر شدند و یه راست رفتن سراغ سگی که در حیات قصر بود نمکی اولش از سگ ترسید اما دلو دریا زد و جلو رفت و قلاده رو از دور گردن سگ باز کرد در همین موقع سگ تبدیل به جوانی زیبا و رانا شد سلام نمکی ازت ممنونم ممنونم تو که هستی؟ من پولادم پسر پادشاه این سرزمین تو, تو پسر پادشاه این سرزمینی؟ پس چونه به شکل سک داره اومده بوده؟ حکایتش طولانیه فقط همینو بدون که اون دیو لعنتی منو تلسم کرده بود تا نگهبان این قصر بشن برای چی؟ تو اسم تلاست درسته؟ درسته و تو هم ستاره ای. آره درسته تو, تو اسم ما رو از کجا میدونی؟ من هر بار میدیدم که دیو با یکی از شما وارد این قصر میشه وقتی دیو شما رو صدا میزد رو به خاطر سپردم اما کاری از دستم بر نمیمد چون تلسم شده بودم نگفتی برای چی تلسم شدی؟ چون پی به راز دیو برده بودم و میدونستم شما رو داخل این قصر زندانی میکنه دیوم هم وقتی اینو فهمید فورا منو تلسپ کرد تا مبادا دست از پا خطا کنم پولت خانه ما باید چیکار کار کنیم؟ ما هیچ کدوممون نمیخوایم با دیو ازدواج کنیم این دیگه پرسیدن نداره نمکی باید خیلی زود از این قصر فرار کنیم دیو لعنتی هفت شب و هفت روز قرار بخوابه توی این مدت ما میتونیم از اینجا دور بشیم میتونیم بریم به یه سرزمین دور تا دست دیو بهمون نرسه نه ستاره این راهش نیست کافیه دیو همه جا رو بو بکشه تا دوباره هممونو پیدا کنه آه، آه، پس باید چی کار کنیم ها چاره این مشکل فقط اینه که شیشه ای عمر دیو بشکنه شیشه, شیشه ای عمر آره فقط در این صورته که دیو از بین میره. ولی ولی چطوری میتونیم شیشه عمر دیوا پیدا کنیم؟ پیدا کردن سخت نیست. از خیلیا شنیدم که معمولاً دیوها شیشه عمرشون رو همون جایی که زندگی میکنن نگه میدارن. یعنی فکر میکنید تو همین قصر باید دنبال شیشه عمر دیو بگردیم؟ آره، حتماً شیشه عمر دیو یه جایی تو همین قصره فقط این قصر خیلی بزرگه و ما فرصت زیادی نداریم. اگه تا شب هفتم نتونیم اون شیشه رو پیدا کنیم، دیو بیدار میشه و هممون رو میکشه. از معطل چی هستی؟ از همین الان بریم توی قصد رو هر کدوممون یه نقطه اون تو رو بگرد فقه بریم بچه ها بریم. بریم. بریم. همراه دخترها وارد قصر شد. هر کدوم از اونا یه نقطه قصر رو گشتن. اتاق‌ها، مهمانخانهها، سالن‌های بزرگ، گنجه ها و انبارها همه وارسی شدند. اما از شیشه عمر خبری نبود که نبود. تا اینکه روز هفتم از راه رسید. چند دقیقه بیشتر به بیدار شدن دیو نمونده بود که پولاد یاد زیرزمین افتاد خودشه خودشه چی خودشه پولاد؟ زیرزمین حتما شیشه ای عمر دیو تو زیرزمینه نمکی عجله کنید باید بریم اونجا و همه جاش خوب بگردیم باید همه جا رو خوب بگردیم دخترا عجله کنید ممکنه ممکنه تو حوز باشه بیا یه ماهی تو اون حوزه حتما شیشه ای دیو دیفتون شکم اون ماهی، باید ماهیو از حوز بیاریم بیرون چقدر لیزه نه از از بیرون بره میتونی شکم ماهی چیزی رو حس کنیم آراره خودشه یه چیزی توی شکم این ماهیه حتما شیشه عمره عجل کن الان دیو بیدار میشه باید چه باز کنم یه نفری یه چاقو برام بیاره من بیارم پیدا خود میشه ما رو اینجا ببینه هممونو با هم میکشه ممنونم تلا هلان به دیفت اینجاست افزاران اونو شیران چه خبره؟ کی به شماها اجازه داد میاده؟ خب کاری میکنه پولاد دیف داره به ما نزدیک میشه هم اونجا مایست اگه از جادجان بخوری این شیشه ای عمر تو میندزم زمین رو میشکنم نه نه نه کهاش میکنم این کار رو نکن پولاد اعتماسش می‌کنم. به حرفاش کشتده پولاد شیشه رو بشکن تو را به من رحم کنید من کاری به کاری شما ندارم هر کاری بگین انجام میدم فقط اون شیشه رو بدین به منو از اینجا برک ایخه ما ستون بکنن گورت فولاد می میخواد اینجوری اون شیشه را ازت بگیره و هممون رو همین همینجا بکوشه؟ <تصفيق> بادی و بیرحمی هستی تو, تو این مدت همه ای ما را زندونی کردی تو منو را کردی و به شکل سک دار آوردی حالا چطور انتظار داری؟ ببخشم؟؟ ولی اشتباه کردم هر کسی ویتون اشتباه کنه ولی حالا پشیمونم منو ببخش اون شیشه رو به خودم بده بعدم هر جایی که دلتون خواست برید قول میدم دنبالتون نیام به حرفاش گوش نده پولاد، او یه دیوه نمیتونه به خودش عمل کنه به من اینکه شیستره بهش بدی همه امونو برای این کار رو نمی کنم نمکی خبیلی نم. اون شیشه رو بده به من پولات بده به من جلوتر نیا هم. برای اینکه که شیشه رو بهت بدن باید یه کاری انجام بدی هر کاری که بگی انجام میخوای چی کار کنی پول؟ به من اعتماد کنی باید چی کار بکن؟ باید هر کدوم از این دخترها رو به خونه خودش بفرستی کاری کنی همشون هم؟ تو یه چشم هم زدن تو خونه های خودشون باشن گول میدم باشی ولی من نمیرم پولت چی داری میگی نمکی من میخوام اینجا بمونم نمیتونم تو رو تنها بذارم ولی ولی بی ولی آره من اینجا میمونم من تو یا با هم میمیریم یا با هم از اینجا میریم باشه اما این دیو باید همین الان بقیه ای دخترها رو به خونه هاشون بفرست باشه, باشه. قبول میکنم عجله کن یک دو سه ها به خوب ها به اینا خوب اونا هر هرچی بره خانه خود جزنمکی ها به اینا ها به اونا ها به اینا ها به اونا هرچی بره خانه خود جزنمکی دیده پولا هیچی چیکار کردم همه یه دختر رو رفتن خونه شد حالا اوشیشه رو بدم بهش اعتماد نکن پولت اون یه دیبه بد جنسه منو طوره میکشه من به قولم عمل میکنم اگه اوشیشه رو به من بدید شما دو نفرم آزاد بیکنم نه تو دیو بدجنسی هستی نیست. اگه زنده بمونی بازم اشتباهات گذشته رو تکرار میکنی نمی کنم. من نمی تونم بذارم بازم چنین بلاهایی رو سر جوانهای دیگه بیاری و اونا رو زندانی کنیم ده. سزای تو مرگ نه ببرم من من نورم آتیش بگیرم نورم می سوزم İki koma cam kul umut buna ولی دوستان پولات چیشه امر دیو و شکست و دیو آتش گرفت و خاکستر شد پولات وقتی خیالش از بابت دیو راحت شد به نمکی گفت که دلوسته اون شده و قصد داره باهاش ازدواج کنه و اونو به قصر پدرش ببره اما نمکی دلش میخواست خودش خودشو از این موضوع خبر کنه به همین دلیلم پولاد و نمکی به طرف خانه مادر نمکی رفتن و بعد هم همگی به اتفاق راهی قصر پدر پولاد شدند. پولاد و نمکی چند روز بعد به عقد هم در اومدن و سالیان یعنی سال با خوبی و خوشی کنار هم زندگی کردند. از افثانه نمکی که از کتاب افسانه‌های ایرانی نوشته محمد قاسمزاده براتون انتخاب کردیم امیدواریم از شنیدن این افسانه لذت برده باشیم افسانه نمکی تنظیم برای رادیو سحیلا خدادادی راوی مهرخ افزاری، بازیگران به ترتیب اجرای نقش ناهید مسلمی نگین خاجنصیر میرطاهر مظلومی منا صفی مینو جبارزاده امیر زند دلا کارگردان بهرام سروری نژاد، افکتور محمد رضا قبادی فرق. صدابردار حیدر صفداری، تهیه کننده زهرا عبدالله زادی. زندگیاند افزول زندگی تون دلنشین و مانا تا افسانه دیگر به ترپتون